این داستان در قلعه قول بیره روزی روزگاری شهر تاریک و زشتی وجود داشت که از قیافه مردمش معلوم بود هیچ کدومشون خوشحال و خوشبخت نیستن اما هیچ کدوم از مردم ترش رو و عبوس شهر حاضر نبودن از اونجا برن چون هیچکس نمیدونست بیرون دیوارهای شهر چی انتظارشو میکشه تا جایی که چشم کار میکرد زمینهای بزرگ و پهناوری از گل و لجنزار اطراف شهر رو پوشونده بود هیچکس تا حالا اونقدر شجاعت به خرج نداده بود که به عبور از این لجنزارها فکر کنه. به خاطر همین هیچکس نمیدونست چیزی اون طرف لجنزارها هست یا نه مردم شنیده بودند که فاصله‌ای دور از شهر خورشید همیشه میتابه و مردم کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکند اما هیچکس باور نمیکرد این حرفا واقعیت داشته باشه. هیچکس جز مردی به نام کریستین مدتها بود که هرچی میگذشت کریستین از زندگی توی اون شهر غم زده و افسرده کننده بیشتر دل زده میشد اما دیدن نوری درخشان در دوردستها سرانجام اونو وادار کرد که تصمیم بگیره از شهر بره چند هفته پیش از اون کریستیان برای اولین بار اون نور عجیب رو دیده بود در آن سوی لجنزارها سوسو میزد به نظر نمی که جز کریستیان کس دیگه ای اون نور عجیب رو دیده باشه. مردم مثل همیشه دستشون رو توی جیباشون گذاشته بودن و در حالی که چشمشون به سنگ فرش پیاده رو دوخته شده بود راه می رفتن. اما کریستیان که لحظه ای فکر اون نور عجیب از سرش بیرون نمی رفت با خودش گفت من یا باید هر جور که شده این شهر نفرین شده یه لعنتی رو ترک کنم و خودم رو به اونجا برسونم یا جونم ها توی این راه از دست بدم. کریستیان هیچ چیز با خودش بر نداشت. فقط صبح روز بعد از خواب بیدار شد و به جای اینکه مثل همیشه به سمت محل کارش بره، به طرف دروازه شهر رفت. وقتی مردم متوجه شدند کریستیان خیال داره از شهر بره، قاه قاه خندیدن و مسخرهش کردن. مردم بهش میگفتن حتما عقلت رو از دست دادی؟ شب که بشه وسط این لجنزارها گم میشی و هیچ هم نیست که به دادت برسه. اما کریستیان همه این حرفا رو از این گوش شنید و از اون گوش در کرد. بیتنا به اونها به راهش ادامه داد از دروازه ی زنگ زده ی شهر که قرج قرج صدا می کرد رد شد و یک راست رفت به طرف اون لجنزارها. همین که کریستیان به خارج شهر رسید حس کرد تمام مشکلات و بدبختی هاش رو پشت سرش جا گذاشته با قدم های مسمم، به طرف نوری که توی دور دوردست دیده میشد به راه افتاد رفت و رفت و رفت تا اونقدر از شهر دور شد که دیگه نمیتونست شبه سیاه و دود گرفته اون رو ببینه دوباره رفت و رفت و رفت تا عاقبت از تشنگی و گرسنگی و خستگی از پا افتاد کریستیان که دیگه توان و نای اینو نداشت که جلوتر بره چشماشو بست و ناگهان همه جا براش تاریک شد سرانجام با ریخته شدن یه سطل بزرگ آب به سر و صورتش احساس کرد دوباره به هوش اومده ناگهان از جا پرید و صاف نشست آب سردی که توی دهان و سراخهای بینیش رفته بود اون رو به صرفه و نفس نفس انداخت ناگهان صدای حالناکی که کریستین به عمرش نشنیده بود بلند شد من قول بیرحمم کریستین سرش را که بالا آورد از وحشت چار ستون بدنش به لرزه افتاد اون توی اتاقکی سنگی به اندازه یک غار روی زمین افتاده بود و مرد بزرگی به اندازه ی خونه کریستین توی شهر روبروش ایستاده بود قول که چشمای خون گرفتش های سیاه و های دراز و چنگال مانند داشت دوباره قرید که چرا بدون اجازه وارد های من شدی کریستین لرزون و ترسون جواب داد من معذرت میخوام متوجه نشدم که که بدون اجازه وارد های شما شدم قول با صدایی ترسناک گفت چه بهونه ای حالا یادت میدم بدون اجازه وارد زمین های مردم شدن چه ای داره حالا تو یک زندانی هستی برق شیطنت آمیزی توی چشمهای قول درخشید و قهقهی شیطانی سرداد گفت من از تماشای موشی مثل تو که توی سیاه چالم افتاده خیلی لذت میبرم. بعد با پنجه های بلندش دست انداخت و یقه کریستیان رو چسبید. وقتی کریستیان احساس کرد که قول داره اون رو از یک راه پله طولانی میکشه و به طرف پایین میبره، قلبش از حرکت ایستاد. از پژواک صدای پای قول توی اون فضای سرد و نمناک خون توی بدنش منجمد شده بود چنان بوی گندی هوا رو پر کرده بود که بی اختیار جلوی ورود هوا به داخل بینیش رو گرفت بالاخره های قول از دور یقش باز شد و کریستیان رو روی سنگفرش کاف یک سیاه چال پرت کرد یک موش سری دوید و خودش رو درست جلوی صورت اون رسون جیر, جیر کرد. کیرسیان که از دیدن موش به شدت جا خورده بود سری بلند شد و ایستاد. بول گفت این آب و نون رو بگیر. اول تکی نون کپک زده توی بغل اون انداخت و یک سطل آب لجن گرفته جلوی پاش پرد کرد. گفت تو باید زنده بمونی. چون دوست دارم فردا که برگشتم ببینم داری جز میزنی و التماس میکنی که ببخشمت. اول بیره سر سردار. در چال رو محکم به هم کوبید اون رو با یک کلید گنده قفل کرد و گرمب گرمب از پله ها بالا رفت. ریستیان آب دهانش رو به سختی غور داد. روش رو از در قفل شده برگردم. اون موقع متوجه شد اون تنها زندونی سیاهچال نیست. چی صورت از میون فضای تاریک و روشن سیاهجاد به اون زل زده بودن. چهره هایی که حتی از خودش نتر و تشنه تر و درمونده تر به نظر می رسیدن کریستین به سختی پرسی شما چند وقته که اینجایید؟ یکی از مردان آهی کشید و جواب داد اونقدر زیاد که دیگه اسممون هم یادمون رفته زنی که چشمش به نون و آب کریستین بود گفت قول فقط هفته یه بار به ما آب و غذا میده. کریستین بدون اون که فکر کنه داره چیکار میکنه گفت بیایید بگیرید بخورید. اگه همه ما قوی بمونیم و به همدیگه کمک کنیم شاید بتونیم راهی پیدا کنیم تا هممون از اینجا بیرون بریم. لازم نبود که کریستین دوباره به اون زنها و مردای بینوا نوات کنه. اونها جلو خزیدن و با هرس و وله به جون قرص نونا دادن. درست توی همون لحظه صدای تق بلندی که پشت آدم از شنیدنش تیر میکشید توی هوا پیچید و در سیاهچال با صدای بلندی باز شد. کلیسیان با تموم تعجب دید که یک کلید تلایی توی سوراخ قفل ظاهر شده. روی میله کلید نوشته شده بود کلید مهربانی. کریستین فاری خودش رو جمع و جور کرد. کلید رو قاپید و گفت همتون را بیفتید زود. زندونیا یکی یکی از در سیاهچال بیرون اومدن و شروع کردن به بالا رفتن از پله ها. کلید مهربونی به شکلی جادویی قفل تموم درهایی را که قول پشت سر اونها قفل کرده بود باز میکرد. از خود قول هم هیچ خبری نبود. کلیستیان و دوستای جدیدش بدون لحظه ای توقف با شتاب از قلعه خارج شدن و تا وقتی خوب از اونجا دور نشده بودن نیست دادن. بعد نفس نفس زنود هم دیگر رو بغلی کردن و به طرف نوری که توی دور ها سوسو می زد رفتن. کریستیان لبخندی زد. حالا اون میتونست دورنمای شهری طلایی رو ببینه که بیشتر از همه به اون نزدیک شده بود. وقتی دوباره به راه افتاد حس تازهی توی قلبش جوونه زد. این حس تازه امید بود.